بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين ما بعد يزهومين درسة دروس شمائل رسول الله عليه الصلاة والسلام اس كتابة من ترمزي رحمه الله نهومين باب باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم در كتاب مختصر الشمائل كالباني داره عمين كتاب إن باب باب بس هست وسط لباس ها بحث غذای رسول الله صلی الله علیه و در اس این جلوتر بود یعنی نمیدونم حالا علت چیه که اینجا اومده الله عالم نمیدونم چون باب بعدی هم باز دوباره میریم به خف رسول الله عائسته صلی اللہ علیہ وسلم که برمیگرده به لباس حالا اینجا وسط غذا اومده نمیدونم چرا حالا کلاً ما طبق اصل کتاب خواهیم رفت اصل کتابی که شیخ عبدالرزاق هم شرحش داده شیخ عبدالرزاق عبادی باب ماجا فی عیش رسول الله صلی الله علیه و نزه مصری ها به نان میگن عیش تو خلیج، تو امارات به برنج میگن عیش هرچند که تو عربستان به برنج میگن روز. ولی خب تو امارات مثلا یا حتی جنوب ایران عرب ها به برنج میگن عیش هرچند که عراقی ها عربا به برنج میگن تمن. اصلا تمن اسم مارک برنج بوده از اینگریز میومده عدد تن روش بوده تن من تن ده اسم اون برنج تن من اومدن اطلاق کردن به خود برنج در اس حالا شاید روز نزدیکتر باشه به این برنج كله خود عیش کوته غذا هست نه اون عیش مصری نه اون عیش خلیجیش یعنی نه اون که بگیم این عیش منظور برنج و نون عیش منظور بگیم نانه نه عیش یعنی غذا عيش یعنی غذا اون چیزی که در مورد غذای رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده، غذای رسول الله صلی الله علیه و سلم قوتش خوراکش خوراک رسول الله علیه صحیح و آله چی بوده ما میدونیم که رسول الله علیه صحیح و آله از دعاهاش چنین بوده اللهم رزق آل محمدن قوت غذای آل محمد رو بار الها قوت قرار بده قوت و چیزی که غذایی که ایسان را کفایت بکنه به انسان رمق و جان بده رزق آل محمد را این چیلین کفایت قرار بده نه اینکه زیادروی بشه و نه اینکه کم بشه نه اینکه اسراف بشه نه اینکه مافوق حاجتشون باشه و نه اینکه کم باشه به طوری که محتاج دیگران باشن و گرسنه بمانند قرار بده که رمق داشته باشن جانی بر تنشون بیاد رزق آل محمد را بار الله چنین قرار بده این دعای رسول الله صلی اللہ علیه و چنانچه در سحیه نومده خب بریم به دوتا حدیثی که امام ترمیزی رحمه الله در این بابو ورده که بعدن دوباره به این مسائل که در مورد خوراکی هست خواهد اومد ای خب اینجا این دوتا حدیث را فعلا خواهیم کن حفت ديكو <تصفيق> مين حديث أمام تلمزير رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوباني ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما فقال بخ بخ يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني في فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة مغشیاً عليا، فيجيء الجاي، فيضع رجله على عن خير أن بجنون و ما بجنون و ما هو إلا الجوع. <تصفيق> این حدیث آششاسه‌هیه، بخاری و مسلمه. حدیث صحيح حدیث ابو محمد بن سیرین، بزرگان تابعین میکه که ابو هریره بودیم رضی الله عنه. نزّ ابو بودیم. اون زمانی که دنیا بر صحابه شده بود، بعد از این که فتوحات اسلامی شد و غنی شدند، میکه نزّ ابو بودیم و عليه ثوبانی ممشقان. ممشق یعنی مخطط یعنی راه راه لباس جامعی بردن داشت راه راه با رنگهای متفاوت سبز فرمزه، سیاهه من کتن از پنبه بوده لباس کتونی فتمخ فی احده ما مخاطع بینی خودشون یک گوشه ای لباسش باش پاک میکنه بعد میگه بخل بخل لفظ بخ اینجا از باب مزمت یاد میکنه ابو هره رضی الله عنه بیاده چی میفته؟ بیاد دوران فقرش دورانی که غذا نداشت که بخوره الان بهترین جامعه لباس رنگارنگ لباس قشنگ لباس زیبا پوشیده برتن داره خب بیاده اون دورانی که تازه مسلمان شده بود تو مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم افتاده میگه بخن بخن یه تمخ خطاب هره و الان آب بینیش رو داره با لباس کتونی داره پاک میکنه بوریره این لباس اینقدر گرونه اینقدر لباس قشنگ و لباس پربه ها و قیمت داره لقد رأیتونی میدیدی مرا در اون حال روز و انی لأخر رو دیما بین منبر رسول الله و حجرت عائشه مرا میدیدی اون روز که افتادم میان منبر رسول الله علیه و خونش اتاق عایشه. منزل عايش، امون آقایش مغشیان علیه غش میکردم از گروس نگید فیاجی الجای یکی میومد من رو که میدید که دارم به خودم میپیچم، میغلتم روی خاک و زمین لقتی که میدید خودم میپیچم فکر میکرد که چی؟ من جنزده شدم فیاضع و رجده و علعونقی پاشو بیزاش رو گردرم یرا انی بی فکر میکرد من جنزده شدم دیوانه شدم و ما بی من هم دیوانه نشده بودم، جزاده نشده بودم و ما هو الا للجُن، فقط از گرسنگی بود، فقط از گرسنگی بود. در این حال و روز صحابه بود، نه تنها به و حتی خود رسول الله علیه و السلام، هو ساز که در مکه محاصرهشون میکنن، این دوران رو همه گذروندن، این دوران رو همه گذروندن. چه از بی غذایشون و چه از کم بوده اون لباس و جامه‌ای که برتن میکنن. از غذا خود رسول الله علیه و ریشه درخت میخورد برگ درخت میخورد چوب درخت می خوردن. در مکه نبود حتی ابتدای که هجرت میکنه در مدینه هم اینطور سه ماه اون عایشه میگه آتش با نمیشود در منزل رسول الله صلی الله علیه و سنت خب شما در نظر بگیرید فقیر میاد دم در خونه اون عایشه سه دون خورمه به شر نیست میدن به اون زنه یعنی هی دیگه بعد از اون دیگه چیزی نیست خونه رسول الله صلی الله علیه و سنت سر او میاد پیش اون عایشه چیزی است بخورین نه پس من روزم و این حالشون بود نه اینکه نداشتن و میدادن مثلا خورمه هایی که دست اون عایشه بود میداد بدرش عزیز ولی طلب من ندارم بس من چه کار کنم بس من از کجا بیارم نه همونی که هم داشت میداد به دیگرم میداد فقیر و مستمندش حتی لباس هم نداشتن اون صحابی یادتون هست که سنش کم بود ولی خب قرآن بلد بود پیش نماز میشد زن اعتراض کردن گفتن خب یه لباسی حداقل بلندتر بپوشونیدش که حداقل سجود کوی چیزی میره شرمگاهش کده که حداقل پوشنده بشه لباسی یک بچه نداشت که بپوشوننش در این حال فقر تنگدستی در این حالت بی خوراکی که اینجا بی غذایی اینجا یاد میکنه ابوهره رضی الله عنه در این حالت بودن خب ابوهره رضی الله عنه کنار خونه رسول الله صلی علیه و داره به خودش میپیچه یعنی چی یعنی رسول الله صلی الله علیه و چیزی نداشت اگر داشت به ابوهره میداد ربطش با ما جاء في عيش رسول الله صلی الله علیه و خوراک رسول الله علیه و نبود که ابوهره نبود صحابة شمفة متر افتود الدومين حديث امام الترمذي رحمه الله من قياد حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الظفف قال أن يتناول مع الناس إن حديث مرسلة هر چنین خواهد اومد بعدا بعداً بازم دوباره این نحیص تکرار ق شد متوسلش هم هست ولی خب انجام تو رمورسل مالک المدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم ندیده. که اینجا طبیعیه در از رسول الله علیه و سلم نقل میکنه ولی خب بنوان حدیث متصل صحیحه که خواهد hazards میگه که ماش به عرض الله علیه و من خبزن قبط هیچ گاه رسول الله صلی علیه و سلم با سیر نشوده بود ولا لحمه ولا هم گوشتش نان نگوشت گاه رسول سیر نشده بود مگر استثناء داره اللا على مالک ابن دینار یکی از یکی از اهل بادیه از بادیه چینان سال پرسیدم وفقف چیه؟ قالا انتنناوللم مع الناس الله مگر اینکه رساص هم ضفی مهمانی باشه جایی باشه با مردم بخواد بخوره ال رسول الله رسن با قومنشسته بود باقوم میخورد تا صیر بشه و الله وصلله عليه احق وسلام گاهی نه با نان سیر شده بود و نه هم با گشتش. نجش شیخ عبدلرزاق یک مسئله را از محمد نقد میکنه از باب فایده بهتون میگم در بحث غذا و علا خصوصا اینجا بحث این که رسول الله صلی الله علیه با جمع میخوردن اشاره به شده میگه غذا برای اینکه انسان برکتش رو حس بکنه و مشمول برکت بشه میگه باید آدابی رو در نظر بگیره یک اول با بسم الله شروع بکنه مشمول برکت بشه و آخرش هم با, با خاتمه بده سوم با هم بخوره در یک ظرف و چهارم هم حلال باشه میگه اینها اگر در غثاد باشه تو از اون برکت غذا بهره بردی و لا نه یعنی اینا یاد میشه در بحث غذا خوردن حسین اینکه اینجا این حرف امام احمد را شیخ طوسی قبا در شرح این حدیث میاره در شرح این حدیث قال الامام احمد رحمه الله اذا جمع الطعام وارمان فقط کمون غذای کامل اگر چهار تا وسط درش باشه کامله اذا ذكر اسم الله في اوله فی في و کثرت عليه الايدي و كان حل ده مين باب باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم اون شي درباره خف اون جوراب چرمی که از کوزک پا بالاتره که رسول الله صلی الله علیه و سلم گاهی می پوشیدن اون چیزی که درباره خف اومده خف بس جورابی هست از چرم که شخص میپوشه از چرم از پوست حیوان دو تا حدیث هم داریم در این باب که آخرین احادیسی هست که امشب خواهیم خواند 77مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگه حدثنا هناد بن السری قال حدثنا وکی عن دلهم ابن صالح عن حجير ابن عبد الله عن ابن وريده عن ابيه بريده رضي الله عنه ان النجاشية اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين اسودين سادهين فلابسهما ثم توضأ ومسأ عليهما ومسح عليهما حديث بريده دا داريم رضي الله عنه میگه نجاشی البته این حدیث هم شاهد داره و هم متابع داره آلبانی مفصل در حدیث سنن ابو داوود تخریجش کرده این حدیث هم ترمیزی نقل میکنه هم ابو داوود و هم ابن ماجه در اسنادش دل هم ابن صالح هست که ضعیفه و همچنین حجیر ابن عبدالله که مقبوله دو تا ضعف درش هست ولی که شواهد و متابعات داره بر خودش این حدیث یعنی حدیث تقویت میشه به درجه حسن میرسه. ابو ردیه رضی الله عنه میگه که نجاشی به رسول الله علیه و سنت و هدیه میده از اون خف از اون جوراب چرمی سیاه رنگ ساده جین ساده یعنی بدون نقش بدون مو یعنی اون چرمی که موش زده شده موی برش نیست. فلبسهما زمانی که بهش هدیه میده میارن به نظر رسول الله علیه و میپوشه هدیه هست. او بردن رسول الله صلی علیه و سلم فورا میپوشه. از ما اینکه فردا مثلا اگر خبری به طرف رسید، دلش خوش بشه یا اگر به فرض هم در یادم کسی به هدیه داد، و دوست داره اون هدیه رو در تو ببینه و خوشحالی رو در مقابل اون هدیه در تو ببینه. میخواد تو خوش بکنه. اون هدیه رو ازش قبول کنه. و اینجا قبولیه این هدیه از رسول الله صلی علیه و به یعنی از برادرش که بیش مسلمانم شده بهش کادوی هم داده اون خوفی میبینه فورا خوف برمی داره میپوشونه ابراز خوشحالی و خرسندی همی وقتی که نجاشی فوت میکنه میگه ان اخل لكم بالحبشه توفی برادرتون حبشه وفات کرده بیان برش نماز بخونیم این اون تبادل روحی و معنوی بین دو تا برادر ایمانیه که این ارتباطه باید باقی بمونه غیر از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه به هدیه هم میکنه تهاد و تحاب و هدیه بدیده تا اینکه محبت محکم بشه مهمه این و خوبت تغویت بشه و این قبولیت این بحث محکمی و خوتی از رسول الله صلی الله علیه و salam فلابس هما خفره میپوشه ثم توضوا سپس وضو میگیره و مسح علیهما از جمله کارهایی که میکنه رسول الله علیه و salam مسح رو خوف میکنه نه کلا شما بگید پس من الان خف میپوشم مس میکنم نه الان اینجا صحابی به خلاصه داره بهمون نقل میکنه منظور این با تهارت پوشیده وضوح هم داشته بعد خواسته که تجیده وضوح بکنه دیگه اون خف را از پاش در نیورده روی اون خفه مسح کرده و این جز مسائلی هست که اهل سنت در کتاب اعتقادی میارن چون احادیث در این باب نزده اهل سنت متواتره بحث مسح بر روی جراب و یا خف نزده اهل سنت جایزه برخلاف اهلت تشیع. كفتدوا من حديث الإمام الترمذي رحمه الله من جياد حدثنا بن سعيد قال حدثني قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن العيا الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدا دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم اذكي هما ام لا قال ابو عيسى وابو اسحاق هذا هو ابو اسحاق و واسمه سليمان انجو الان دوتا حدیث تو یک حدیث شما داشتید این دو تا حدیث ها حدیث نیست با دو تا اسناد این حدیث رو بهاتون روایت کرد یک قسمتش صحیح یک قسمتش هم ضعیف اسناد اول بوتيبه مسعيد از يحيى از حسن بن عياش از ابو اسحاق از شعبي اسناد اولی ابو اسحاق از شعبي أسناد بعدي كبعد ميات قال المغير بن الشعبة أهدى دحية وقال إسرائيل عن جابر عن آمر عامر الشعبي يعني عامر الشعبي ونا أسناد بع أسناد بعدي جابر در الناقم يكونه جابر كيه جابر جابر الجعفيه جابر بن يزيد الجعفي كزعيف جدنا بحديث شقاب للتأقيية تام قسمته قسمتها قبل فصلامي حديث أبو إسحاق الجعبي كسحيه قال قال, قال المغير بن الشعبة و غير بن شؤبه میگه اهدى دحيه للنبي صلى الله عليه وسلم خفين هما دحیه قلبي همون کسی که جبرئیل علیه و زمانی که من نازل رسول الله صلی الله علیه و وسلم بو شکله دحیه میموت مشهور به این شخص خشرو و زیبای بوده جبرئیل به شکل اون میوت نازل رسول الله علیه و وسلم این دحیه به رسول الله علیه و وسلمی صحابی به هدیه میده دو تا خف خف گفتم اون جورابی که از شرمه رسول الله صلی الله علیه و وسلم اون دو تا خف رو فلبسهما گفتیم این از باب اکرام نسبت اون شخصی که به انسان هدیه میده که دلشو خوش کنه خب در روایت جابر چنین بود جابر جافی از عامر که اومده عهد لنبی صلی الله علیه و جبه جبه اون جامعه هست که برتن تن میکنن یعنی هم جراب میده هم جراب چرمی یا خف و هم اون جامعه فلبسهما و رسولهم صلی الله علیه و پوشیدن هر دو رو حتى تخرقا راي که كهنه شدن لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم اذكي هما ام لا ندونه الله عليه الصلاه والسلام كه آيا اينها پا كن نه يعني چرما چرم سگ يا چرم حيوني كه ذبح شده نشده نميدونه رسول الله صلى الله عليه وسلم از تهارت اون چرم ولی خب گفتیم اين قسمت از اضافه كيه جابر بن يزيد جعفي كه ضعفش هم شديده و قابل قبول نيست خب اون چیزی که شاهده در این حدیث بحث پوشیدن خف توسط رسول الله علیه سلطه و سلم جوراب پوشیدن چرم پوشیدن دمپوی پوشیدن هم میاد در حدیث بعدی رسول الله صلی اللہ علیه وسلم همه هم با هاشون رو با بااش پوشوندن و جز لباس حساب میشه جزء لباس حساب میشه حتی اون جورابی که انسان بپا میکنه حتی اون دمپوی جز اون چیزی که انسان رو میپوشونه و جز نعمت های الهی هست. بر انسان سبب میشه که حفظ بشه چه در مقابل سرما با اون چر اون خوف و چه با اون دمپایی در مقابل خار و خشاتی که بر روی زمینه اینها نعمت های الله جل و علا بر بندگان که باید اون نعمت را سپاس بگن این از جمله درس ها و همچنین بحث هدیه است تاد و تحابو هدیه سبب میشه که محبت بین برادران ایمانی قوی تر بشه و این امر ممدوحه و این فضل اخووت و, و برادری که باید ما بر همدیگه داشته باشیم و در همدیگر ببینیم حسن که رسول الله علیه صحیح و زمانی که بهش هدیه می دادن فورا دل اون دوستش برادرش را فورا خوش می کرد دلش را شاد می کرد اون سرور و خوشی را ابراز می کرد از خودش نشون میداد تا اینکه که دل برادرش خوش بشه اینا همه درسا هست که تنها این نیست که با زبان از ما شکر سپاسی طرف بشنوه در مقابل اون هدیه بلکه در عملم باید در ما ببینه چه با اون لبخندمون چه با اینجا با پوشیدن اینا تعاملی هست که رسول الله صلی الله علیه و داره یادمون میده یعنی فراتر از بحث اون لباس تو باید یاد بگیری پوشیده لباس رنگش اینطوری بوده ولی این تنها چیزی نیست که تو باید ازش یاد بگیری تو باید یاد بگیری که نعمت در مقابل نعمت شکر بکنی تو در مقابل نعمت به فکر دیگران هم باشی و دیگرانم اگر فضلی بر سرتو داشته باشند باید ابراز بکنی و خرسندی در مقابل اون فضلی که بگردنت دارن و إلى آخر از اون درسایی که در ضمن این حادیث میشه ازش برداشت کرد صبحبحانه الله هممدک سبحان الله هممد و صسلاملم محمد والاللم محمد